بسم الله الرحمن الرحيم ناود قائدية ناودة درس السيدة المصر يعني دامي بحث خبره النواة خواتش بفرماد إذا خففت ان كان اسمها ضمير الشأن محذوفا وخبرها جملة وحينئذ تدخل على الجملة الإسمية والفعل الجامد والفعل المتصرف نحو تو ان الموت و واعلم ليس للصابر الا النصر در قائد النوا ودوم میگه زمانی که ان مخفف شد زمانی که چه مخفف شد یعنی شد ان یعنی شد تي ان ان میگه اسمش ضمیر شأن که حذف اسمش تي حسف. حسب شده زمین شانه و خبرش جمله هست و خبرش چه بله و در این صورت وارد می شود بر جمله اسمیه و بر فعل جامد و بر فعل متصرف بله مانند علم تو ان الموت قريب دانسن همان موت نزدیک است خب اینجا در اسونین است العلمت انهل یا انهل الموت قريب ضمير ما که ضمیرشان باشه چیه محذوف اسم انهس الموت قريب خبر است و خبر ما اینجا یک جمله است خبر ما اینجا یک جهاز؟ جملة. جمله اسمی هست الموت قریب. خود الموت مبتدا قریب خبر جمله الموت قریبون خبر ان هست خبر جهاز؟ بله. یا روی جمله اسمی میاد. یا روی فعل جامد میاد. یا روی فعل متصر فرقی مم. فعل جامد مثال شو اینجا آورده اعلم انهو هو لی صابری ایلا نصر اینجا روی ليس اومده يعني خبره ما ليه سهاس جملة ألبته خود ليه سه بتناينا. جملة. باله. كليه سه شيء هاس جامده جامد. باله. فائدة. غير أنه إذا دخلت على الفعل المتصرفي. إنت جوفت ببين. یا بر جمله اسمی میاد یعنی خبرش یا جمله خدا اسم که و خبرش یا جمله اسمی یا فعل جامده یا فعل متصرف در تبصره میگه میگه غیر انه اذا دخلت على الفعل المتصرفی وجب الفصل بينها و بينه بقد او سین او صوفه او احد حروف نفیه میگه زمانی که داخل شد بر فعل متصرف زمانی که داخل شد بر چی؟ بر فعل متصرف واجب است واجب است فاصله بین ان و بین اون فعل متصرف به وسیله قد یا سینه یا صوفه یا یکی از حروف نفی یعنی با یکی از این چیزا فاصله بیاد بین ان و بین فعل متصرف ما عرف تو ان قد ینجحو اخو ببین اینجا بعد از ان ینجحو فعل متصرف اومده ینجحو فعل چیه؟ متصرفه که بین ان و بین ینجحو با قد چی شده؟ فاصله اومده دانستم همانا برادرت موفق میشه بلغنی انسا ان تعود من رحلتی که غدا اینجا هم میبینیم که بین ان و بین تعودو که فیله متصرفه با سینه فاصله اومده با چه فاصله اومده؟ به من رسید که تو فردا از رحلتت السفرة باز مجريتي. بصال بعدي يفرح يفرحني أن سوف تحرز منصب رفيعا فسبلغ بلغني أن ستعود من رحلتك غدا بصال بعدي يفرحني أن سوف تحرز منصب رفيعا شادم يكون أدمراء كبدسم يا وري. منسبی بالا مقام خب مقامی بالا بده اسمی آوری اینجا هم بیبنیم که بین آن و باین التحرزو که فیله منتصرفه با صوفه فاصله و مده بسال بعدی تو آن لو استعنت بالحاکمی لما باعت حقوقك تحقیق کردم که اگر همانا اگر استعانت تلبتی از حاکم هایت یا حقوقت ضایع نمی‌شد. خب. No. اینجا با لو فاصله اومده است. کی از حروف نفیه. و لن تو لم تصادف احدا. بله. اینجا هم با حرف نفی لام فاصله اومده پس یک نقطه قشنگی رو گفت بعد از قاعده نوه دو اذا خففت که انا زمانی که که مخفف شد شد که انا شد چی؟ که انا میگه جرد على حکم انا المخففه میگه جاری میشه بر حکم انا المخففه جاری میشه بر حکم چی؟ انا المخففه فکه الان خون دیم فیا اسمه و ضمیر شعر خب در نتيجة اسمش زمير الشعنه حاسف حاسف وخبرها الجملة التي بعدها وخبره كأنه مغرب جمليك بعدش ومدى مثل لأنه فإذا دخلت على فعل متصرف فصلت عنه في الإجابة بقد وفي النفي بلا وزمانك إن كأنه مخففش كأنه داخل شد برفيل متصرف فاصله میاد در بحث مثبت با قد و در بحث نفی با ل مانند کأن قد قام زید اینجا که مصبته با چه چی چیزی فاصله اومده است قد با قد کأنه قد قام زید با قد بین کأن و بین فعل متصرف فاصله اومده است چون مصبته و در نفی با لا مانند کأن لم يقوم أمر. جوئك زيد استاد. جوئك نأ استاد أمر. خب خلي صادم بود. نودو إذا خففت لكن نبطل عملها لكن يستحسن اقترانها. والحالة هذه بالوافي تفرقة بينه وبين العاطفة نحو. نجل مصافرون ولكن صديقك غریق میگه زمانی که مخفف شد لیکنه چی؟ لیکنه مخفف شد و شد لیکن عملش باطل میشه عملش چی باطل میشه <تصفيق> اما میگه در این صورت مؤذیباست، استحصان هست، پسندیده هست که همراه با واف باشه همراه با چی باشه؟ واو. تا فرقی باشد بین لکن حرف عطف و این لکن مخفف است لکنه باید، این واف ما رو میگه که این لکن مخفف هستی هست؟ بگه زمانی که مخفف شد لیکن نه عملش که باطل میشه اما پسندیده میشه همراه بودنش بواف تا فرق بشه بین آن و بین لیکن آتفه لیکن چی؟ حرف آتف مانند نجل مصافرون ولاکن صدیقو که غریق مسافرها نجات یافتند اما دوستت غرق شد دوستت چی شد؟ غرق شد این لیکن مخفف از مسقل هست میبینیم که عملش باطل شده صدیقه رو دیگه منصوب نکرده بله صدیق دیگه اینجا مبتداه. صدیق چیه؟ مبتدا. قریقه هم خبرش هم حلان مرفوه تفتح سه توفتحو حمزتو انه اذا صحا ان یسد المصدر المصدرو مسدده ها یه قایده کلی میده، میگه همزه فتحه داده میشه، همزه ی اینه، میشه اعنه، میگه همزه، همزه ی فتحه داده میشه، زمانی که مصدر، مصدش باشه، مصدر چیش باشه؟ و تو حيث لا يصح ذلك اما جایی که مصدر صد مصدش نشه، اونجا دیگه فتحه داده میشه چی کسر داده میشه اونجا چی داده میشه و یجود و الفتح و الكسر اذا صحل اعتبارا فتح هم جایزه، کسر هم جایزه زمانی که هر دو اعتبار جایز باشه مطور چیش دی؟ هم کسره و هم فتحه جایزه زمانی که هر دو اعتبار درست باشه یعنی میشه اینو صده صد مصده مصدر کرد هم میشه نه kardeş اگه میشه صد مه‌ صدش کرد اون موقع فتح میشه روشی میشه جائز میشه فائده البته خوب این یه قاعده کلیه بعدن توضیح میده چه جاهای این حالتا پیش میاد جلوتر همین جا تو قاعده بعدی الى هذه القاعده مرجع كل ما ذكره النحاة في باب فتح همزه همزتي ان لا وكسل میگه در تفسیر میگه میگه به این قاعده برمیگردن هر آنچه که نحوی ها ذکر کردهاند در بحث همزه ای اینا در بحث فتحه همزه اینا یا کسرش جایی که فتحه میگیره ذکرش کردن و جایی که کسر میگره همشون به این قاعده برمیگرده هر کجا که فتحه میتونه بگیره پس بدون که صده ما صده, ما صده, ما صده حالا اون جاهایی که ذکر کردن داره ذکرش میکنه 94 دو چار میگه یجی بو کسر و همزه تی اینه مواضع واجب است کسره همزه اینه در هشت جا در هشت جا ما کسرش میکنه و عجوبا یک اذا وقعت ابتداء ان زمانی که در ابتداء واقع شد ان اینالله غفور، اینالله الله. میبینیم که کسر گرفته اذا حکیت بالقول جای دیگه کسر میگره زمانی که حکایت قول بشه یعنی تو بله میگی قول تو یا قال یا یقولو اون مقولو که ذکر میکنی این در ابتداش میاد اونجا چی میگیره کسره کسره میگیره گفتم گفته چی گفتم انک ودودون بله انک ودودون این چرا کسره گرفت؟ میگیم چون حکایته قول اون چیزیه که گفته اون چیزیه که گفته شده اذا وقعت جوابا لقسم لم يذكر فعله او ذکر و كان خبره و مقترنن باللامه من جایی که واجب است همزه اینه کسره بگیره است که واقع شود جواب قسم انگامی که چه واقع شود؟ جواب قسم جواب قسم واقع شود و فعلش ذکر نشود یا اینکه فعلش ذکر بشود این فعلش چه شود؟ ذکر بشه. و خبرش؟ همراه بالا باشه خبرش همراه با چی باشه؟ بالا باشه برای هر گلتا حالت مثال آورده مانده والله این صدیقه که مخلصون اینجا میبینیم که جواب قسم هست اینجا چی جواب قسم بای و اینجا فعل قسم هم ذکر نشده پس هر جواب قسمی بود که فعلش ذکر نشده بود ما این مثال والله این صدیقک مخلصون اینجا خب سوگند به خدا جواب قسم اینه که همان دوست تو مخلص است پس اینجا در جواب قسم اومده و فیل قسم هم ذکر نشده بینیم که چی گرفته؟ یا اینکه نه جو یا اینکه فعلش ذکر بشه ولی همراه با خبر لام اومده باشه همراه با خبر چی اومده باشه لام مانند اقسم بنفسي انني لا اكافئنك که اینجا اقسمو فعل اقسم و ما چه شده؟ ذکر شده و روی خبر که لا اكافئنك هست لام اومده لام اومده خبره نح. روی خبره لا. انني انك... ان چی اومده؟ انه نی لاؤکافی انکا انه یا هم اسمشه لاؤکافی هم خبرشه که روشتی اومده؟ لا اومده این سفومت جاش بود چهار اذا واقعت خبرا این اسم عین او صفة له نحو المدرسه انها مناره تهذیبی. بله. سمعت خطيبا. انه Amir که کسر میگیره زمانی که خبر از اسم عین قرار بیه. زمانی که چه قرار بگیره؟ از اسم این المدرسه تو انها منار التهذیب اینجا انها منار التهذیبی اینجا خبر قرار برده خبر از مدرسه که اسم اینه که اسم چیه؟ بعد. پس المدرسه تو میشه مبتدا انها منار التهذیب میشه خبر میشه چیه؟ خود اینه اسمش های منارو خبر شد مدرسه منار تهذیب منار تربیته منار پاکسازیه یا اینکه که صفت قرار بگیره ببین یا اینکه که چه قرار بگیره صفت, صفت. بله ماندسممع تو ختیبا انه امیر خطببایی شنیدم ختیبی را همان او امیر خطبا بود اینجا انهو امیر الخطبا این جمله صفت قرار گرفته سفت خیبا صفت چه؟ ختیبا نتوان شرکت کنی مثلا شنیدم ختیبی که ك... همان او شنیدم ختیبی را همان او امیر خطبا بود ای همانه کنه که امیر متقا بود هیچ جوابه که معمولا در فارسی ترجمه موصوله کنه مثل الوی جا رجل الوی اندکه آمد مردی که نزد بود ای که حرف ربتی حرف چیه؟ ربت اما ای اینه حرف تاکیدی حرف چی؟ همانه در فارسی تأکیدن با چی معنی کنی؟ به همانه بدرسی هر آینه قطعن بقطعن بله اذا وقعت في موضوع الحالی و دیگر جایی که همزه کسر میگیره زمانی است که حال قرار گرفت. محلن چه قرار گرفت؟ قصد تو و اینی وافقون به قصد او را کردم و همانا من اطمینان دارم به مردانگی او. خب اینجا این واضح حالیه هست اینی واثقون بمروطه یک جمله هست اینه حرف مشبه بالفعل یا هم اسمش هست واثقون خبرش هست بمروطه جارو مجروره هم که در آخر مضافون اله میبینیم که اینجا اینی خسر گرفته چرا؟ چون جمله ما جمله حاله محلن نه دیگه حال که خب یرا با چون به حال منظور اینه که اینجا چون حال هست حمزه چه گرفته؟ کسر گرفته سره اذا واقعت فی صدر صله الموصول دیگر جایی که حمزه کسر میگیره زمانی که در صدر صله الموصول باشه موصول یک صله داره جمله که بعد از اسم موصول میاد بهش میگن صله اگر در صدر این صله اومده بود چه میگیره کسری مانند زارنی الذی زیارت کرد مرا کسی که همان او بزرگوار است کریم است اینجا الذی اسم موصول ما است انه کریم است و ان در صدر اومده و ان در چه اومده در صدر اومده در اومده خب یک و دو و و 4 و اذا وقعت بعد على الاستفتاحیه وحيث وايث دي جار جاي كه ان ت کسر میگیره زمانی كه واقع بشه بعد از الا استفتاحيه حيث و بعد از ايث بعد از ستا اگر واقع شود باز هم چی میگیره کسر مانند الا ان العلماء مصابيح الأمتي اه بهش همان علما چراغ های امت بعد از الا اومده میبینیم چی جرفته کسر کسر گرفته انزل حيث ان الاملاء مستتبل خب انجا بعد هالشيء اومد است بعده بعدس ان بعدس حيثو ان بعدس حيثو ان گفته بود كبعدس حيثو بياد تشي ميغيره تسير ميغيره خب بعدس حيثو اومد دگه و انزل حيثو ان الامن مستتبل خب پس اینجا چون بعد از حیثو اومده تاثیر گرفته میگه انزل حیثو حیث ان الامن مستطم پیاده شو جایی که همان امن فراهم است امن چی است؟ کامل است توب اذ ان الله رحیم توبه کن زیرا که همان خداوند رحم کننده است اینجا هم چرا کسر گرفته چون بعد از اذ اومده بعد از چی اومده بله بعد حتی الابتدائی بعد از حتی الابتدائی هم کسری میگیره مارضا یا مرضا زیدون حتی انهم لا یرجون هم مریض شد زید تا جایی که همان آنها دیگه امیدش رو ندارند خب اینجا بعد از حتی اومده کسری گرفته انه هم فائدة حلت إنما حل الجملة في كل ما سبق من الأمثالي فلا يمكن تأويلها بمصدر. همون هم يكا كبيان كرد. قفته بود اگر إن, إن رو بجملةش در تأويل مصدر بشي قرار داد فاتح ميگره ولی در این مثالهي كما خوندیم هیچ كجا در تأويل مصدر قرار نگرف پس در نتیجه باید چشمش بدیم؟ كس رسره میگه قرار گرفت اینا محل جمله در یک از مثاله های گذاشته که تعویلش به مستر ممکن نیست بالی نوید و پنج یا یا همون انش اینجا فی واجب است فتح دادن همزه ان در 5 در چند جا؟ خلص. این پنجا کجا هستند؟ اذا وقعت في موضع الفائل او نائبه زمانی کس محلن فائل یا نائب فائل قرار گرفت زمانی که فائل یا مانند بلغنی انک راحلون رسیده است به من همان تو میروی اینجا Uh, إنجا فائله بلغني أنك الرحلون در واقع شوني نس بلغني رحلتك در تأولي مستر شميتو بايد بکنين در تأولي چش بکنين مستر بالي فس إنجا أنك راحلون خب ان که و راحلون با هم در تاویل مصدر هستن و فائل بلغه هستن چی چیزی به من رسیده؟ رفتن تو، رهلته؟ تو، خب تو فائله جمعه بلغه قرار میگیره یا هم مفقول بیشیه بله. سمع انا الاسکره منصور شنیده شده است پیروزی لشکر خب اینجا سمیعه ازونجا ایک فیله مجهوله ان الاسکر منصورون نائب فایل قرار میگیره و میبینیم که ان چی داره فتحه داره اذا وقعت في موضع المبتدئی او الخبری ان اسم معنا نحو اندی انك مستحق للكرامتی الحق ان الجهل عارن. بله میگه زمانی که در موضع مبتدا یا خبر ماننده اندی انک مستحق لکرامتی در نزد من چونین است که همان تو مستحق چه استی کرامتی کرام دارنا الزمان تم استحق كرامتي بال والحق أن الجهل آرون إجهل والحق أن الجهل آرون حق الناس. فجال جاست؟ آره باله إذا وقعت في موضوع المفؤول به زمانك در موضوع مفؤول به قرار بكيره عرفت أنك مقيمون خب عرفت أنك مقيمون ماذا چي يجب أن ترى؟ ترى كيف يجب أن ترى؟ ما ترى؟ فعل بفاعله؟ ما تقول نيازبه؟ كيف يجب أن ترى؟ عرفت إقامتك عرفت كيف يجب أن ترى؟ إقامتك بالي. پس انک مقیمون در تعبیل مصدر اینجا و گرفته اذا واقعت في موضع المجرور بالحرف او في موضع مضافله زمانی که در موضع مجرور به حرف یا مضافن اله قرار بگیره یعنی مصدری باشه که مجرور به حرف جره یا مضافن در این دو حالت هم کس فتح میگیره من در علم تو به انکه مصافرون خب اینجا علم تو به انکا اینجا انکا مصافرون در تاویل مصدره و باروش اومده پس مجرور جرور به حرفه؟ دانستم به سفرت به چیت؟ خرجت من المدرسه قبل انکا اتیتا خارج شدم از مدرسه قبل از آمدنت اینجا هم قبل ظرف هست مضاف هست به انکا این انکه اتیت در تاویل مسدر بله آمد خارج چونم از مدرسه قبل اتیانک قبل اتیانک قبل از آمدن تو باره بعد حتی الجر والعاطفه از دیگر جاهایی که فتح میگیره بعد از حتی حرف جر یا حتی حتی که حرف عطف هست ماننده عرفت که حتی انک خب اینجا ما حتی رو میتونیم حرف جر حساب کنیم یعنی عرفت امور حتی انک غیر دانستم کارهایت را تا جایی که دانستم تو چه هستی تا غیرتت را شناختم امورت را تا غيرتت تا کجا تا غيرتت بله اگر اینو عاطف حساب کنیم انجر میشه دانستم امورت را حتى, حتى تي اترا؟ غيرتت را حتى چی اتر غيرتت بله فائده واعلم ان في كل هذه الامثال يسح ان تصبكى انه ما خبرها بمصدره میگه در تمام این مثالات صحیح هست که ان همراه با خبرش با هم بشن مستر با هم بشن چی؟ ماننده بلغنی رحیلوک اونجا که بلغنی انک راحلون چلینه تقدیرش بلغنی رحیلوک سمع ان الاسکر منصورون سمع انتصار الاسکر اونجا هم ک مست... دیگه کجا بود اعرف و انک مقیمون اعرف کونک کا و نک مقیمن و نکه این آخر خ 96 شیش و فتح و هم زتی واقع جائزه از فتح دادن حمزه ان و کسر دادنش زمانی که واقع شد پس ما جاهای واجب بودن فتحه کسر رو خاندین جاهای واجب بودن فتحش رو خوندین اما اون جاهایی که فتحه یا کسر جایزه الان میخونیم میگه جایز از فتحه دادن حمزه و کسر دادنش زمانی که واقع شد بعد اضاء الفجائیه بعد اضاء مانند نظر تو فا اضاء ان الادو نظر تو فا ان العدو یا ان العدو مونه بله خوب در زیر البته توضیح داده که چرا هر دو اعراب جایزه چرا هر دو اعراب جایزه بله نظر تو إن العدو منهزم. يف إذا العدو منهزم. كسرش زمان در نظرت فإذا العدو منهزم. وفاتشين بيه معنا. نظرت فإذا انهزام العدو که همون معناه مستری باید داشته باشه گفته بود دیگه ب... اگه بشه در تاویل مستر بشه میشه فتح بگیره بعد فائل جزا بعد از فائل جزا هم هر دو حرکت رو میگیره ماننده من یزرنی فعنی اکرموهو یا فعنی اکرموهو هر کس مرا زیارت کند پس همان من او رو چیکار میکنم بله خب کسر دادنش اینجوریه من یزرنی فا انا اکریمو. معناشو اگه اینجوری بگیریم دیگه باید کسرش بدیم. ولی اما اگر معناشو مصدری بگیریم اون موقع فتحش میشه؟ جائز میشه. یعنی من یزرنی فا اکرام ایاهو حاصلم. هر کس مرا زیارت کند پس اکرام کردن من برای او حاصل میشه. بالا. بعد فعل قسم بدون لا من او قسمو این المتهم بری اون. او قسمو ان المتهم بریون سوگن میخورم که متهم بری است. سوگن میخورم چی؟ متهم است. خب کسر بودنش که مشخصه اما فتح بودنش چرا؟ گفته بود اگر حرف جر رو بشه روش آورد در موضع مجرور به حرف جر بشه مثلا یکی از جاهاش بود که میشه کسرش فا... کس رشداد اقسیمو بریم بله. بعد اما بعد از اما هم میشه هر دو حرکتو داد مالا دا اما اینهو لو لولدینو نه دو چیزی شما چیه؟ مال من اشتباه چاپی دار. نه مشکل نداره حرکتش ولی چیه لدوکت معالم التمدن اما انهو یا انهو لولا الدین لدوکت معالم بله. میگه اگر چنان چی دین نمی بود معالم تمدن به هم میریخت آثار تمدن چی میشد؟ الاركان تمدن تباه می شد. بعد پس اینجا هم میشه گفت انهو یا انهو بعد از اما بعد از لا جرمه مانند لا جرمه. این العدل یرفو قادر الحكامی لا جرمه. ان العدل یرفو قادر الحكامی. بیشک همان عدل ارزش حکام رو فرامی برد. إذا وقعت خبرا أن مبتداه هو قول أو في معنى القول وكان خبره في معنى القول أيضا والقائل واحد خير القول إني أحمد الله إني أحمد الله إن مهل خير القول إني أحمد الله بگی زمانی که واقع شد خبر از مبتدا خبر از چی؟ مبتدا که اون مبتدا قول بود یا در معنای قول بود و خبر هم در معنای قول بود همچنین و گوینده هم یکی بود گوینده هم چی بود؟ خیر القول قول انی احمد الله خب بهترین قول اینه که این قول منه که من چکار میکنم؟ ستاش, ستاش میکنم خدا را که اینجا خبر قرار گرفته برای گه مبتدا و مبتدا که خودش قول هست مبتدا که خودش چی خیر القول بهترین قول من چی این قول من است که انی احمد الله که احمد الله فی موضع التعلیل و دیگر جای که میشه هر دو تا حرکتو بشدد احذر الكسله احذر الكسله انه عله الفقر یا انه علت الفقر بر حذر باش از تنبلی همانا که تنبلی علت فقر است تنبلی چی است فقر اینجا هم هر دوتا تا جایز است میگه کسر به خاطر استئنافش اگر ما اینو استئناف بگیریم یعنی جمله رو از سر نو بگیریم احذر الكسل اللي هو علت الفقر و فتح ددن شو به خاطر در نظر گرفتن حرف جر. احذر الكسل لأنه إلا تلفقري. تقول جوف تقول ممكن أجر ما جرور بحرف جار بشيء؟ كاسيل. بعير. كافي.